شش. همین وقت بود که یک روز صبح خبرنگار جوان بلند از نیویورک جلوی در خانه گتسپی رسید تا از او بپرسد چیزی برای بازگو کردن دارد یا نه؟ گتسپی معدبانه پرسید در چه مورد؟ هر هرچی که بخواید تو روزنامه چاپ بشه بعد از پنج دقیقه گیچ کننده کاشف به عمل آمد که خبرنگار در ارتباط با موضوعی که نمی خواست آن را بازگو کند و نه اطلاع درستی از آن داشت، توی دفتر کارش اسم گتسپی به گوشش خورده بود و حالا که روز تعطیلش بود با ابتکار قابل تحسینی که به خرج داده بود، آمده بود خانه گتسبی که سرکی بکشد و ببیند چه خبر است. تیری بود در تاریکی، اما انگار شم خبرنگاری طرف هم درست از آب در آمده بود. صدها نفری که به میهمانی‌های او آمده و درباره او صاحب نظر شده بودند به بدنامی گتسوی دامن زده بودند و این بدنامی در تمام آن تابستان بیشتر هم شده بود تا جایی که بالاخره کمابیش گتسوی سوژه اخبار شده بود شایعات بابروز مثل خط لوله زیرزمینی کانادا به گتسبی نسبت داده شد و حتی ای قوت گرفت که گتسبی نه در خانه که در کشتی که شبیه خانه است و مخفیانه در سواحل لانگ آیلند پس و پیش میرود زندگی می‌کند اما اینکه چرا این مزخرفات موجبات رضایت جیمز دکوتای جنوبی را فراهم می‌آورد چیزی نیست که توضیح دادنش آسان باشد جیمز گتس اسم واقعی یا دست کم اسم قانونیش بود. او این اسم را در سن 17 سالگی و درست در لحظه مخصوصی که نقطه شروع کارش به حساب می آمد عوض کرده بود. همان وقتی که دید قایق تفریحی دانکودی در حال لنگر انداختن در گول زننده ترین قسمت کم عمق دریاچه سوپریور است، این جیمز گتس بود که در آن بعد از ظهر با پلیور سبز پاره و مندرس و شلوار کرباس اطراف ساحل پرسه میزد و همین که یک قایق پارویی قرض کرد و به سمت تو علمی رفت تا به کدی خبر دهد که ممکن است باد ظرف نیم ساعت او را در هم بشکند دیگر بدل به گتسپی بزرگ شده بود. به نظر من گتسپی نامش را از مدت ها پیش آماده کرده بود. پدر و مادرش کشاورزان و بی دست و پای ناموفقی بودند که گتسوی حتی در خیالاتش هم هرگز آنها را به عنوان پدر و مادرش نپذیرفته بود. حقیقت این بود که جی گتسوی از وست اگلانگ آیلند از تصورات افلاتونی خودش بیرون جسته بود. او پسر خدا بود. تعبیری که اگر معنای داشته باشد فقط همین معنا را میدهد. او باید کسب و کاری شبیه پدرش می‌داشت یعنی ساختن و پرداختن نوعی زیبایی گسترده پیش پا افتاده و پرزرگ و برق بنابراین این او جی را به شکلی ساخت که یک پسر هفت ساله می‌تواند بسازد و تا آخرش هم به این ساخته پابند ماند بیشتر از یک سال بود که در سواحل جنوبی دریاچه با صدف جمع کردن و ماهیگیری یا هر کاری که برایش غذا و جای خواب فراهم کند روزگار میگذراند. بدن آفتاب سوخته و نیرومندش، خیلی طبیعی کارهای به نسبت سخت آن روزها را تاب می‌آورد. خیلی زود با زنها آشنا شد و وقتی زنها نازش را کشیدند، از آنها زده شد و تغییرشان کرد. دوشیزه‌ها را به خاطر چشم و گوش بسته بودن و زنان بزرگتر را چون خود شیفتگی عظیمش که آنها را بدیهی میپنداشت مسخره میکرد اما قلب گادزبی همواره در تب و تاب بود شبها در تخت خوابش درگیر عجیب و غریب ترین فکر و خیالها میشد و یک دنیا زرق و برق و ناپذیر در مغزش با آب و تاب میچرخید در همان حال ساعت روی لبه روشویی تیک تاک می کرد و ماه با نور مرتوبش لباسهای به هم مچاله شده او را در کف اتاق می خیسند هر شب یک چیز جدید به خیالاتش اضافه می کرد تا اینکه خواب به سراغش می آمد و در یکی از آن صحنه های رنگ, رنگ بی خبر به آغوش خواب می افتاد. تا چند وقت این رؤیا پردازی ها مفری برای قوه تخیلش بود اشاره قابل قبولی به غیر واقعی بودن واقعیت. نویدی که می گفت سنگ بنای اصلی جهان امن و امان روی بال فرشته ها گذاشته شده است. چند ما قبل میل او به عظمت و جلال آینده او را به کالج کوچک لوتری سنت اولاف در مینستای جنوبی کشنده بود. اما چند هفته بیشتر دوام نیاورده بود. ویتنوی آنها به پر پرسر و صدای سرنوشت او و حتی به خود سرنوشت او را ترسانده بود از طرفی از کار سرایداری و نگهبانی که قرار بود با آن خرج تحصیلش را در بیاورد متنفر بود و دوباره عاطل و باطل به دریاچه برگشته بود و آن روزی که در ساحل کشتی دان کودی داشت در پهنه کم عمق ساحل لنگر میانداخت، هنوز دنبال کار می‌گشت کودی آن موقع پنجاه ساله بود مردی آب دیده در سرزمین نقره خیز نوادا، یوکان و هر عرصه خشونتباری باری که از سال 1875 به بعد جویندگان فلزات گرانبها در آن قلتیده بودند. هرچند معاملات مس مونتانا او را میلیونر کرده بود، هنوز بدنه ای داشت، اما مغزش داشت اید پیدا می کرد و زنان زیادی در تلاش بودند تا او را از پولش جدا کنند. کارهای ناشایستی که خانم علاکه ی روزنامه نگار انجام داد و در قبال نقط ضعف کدی نقش مادام دومنتن را بازی کرد در نهایت منجر به این شد که کدی با یک کشتی تفریحی به دریا برود و این قصه خوراک پر آب و تاب روزنامه های سال 1902 شود. کدی پنج سالی امن و امان در طول سواحل مهمان نواز خلیج لیتل گرل کشتی رانی می کرد که دست سرنوشت او را جلوی جیمز گتس قرار داد برای گتس جوان که به پاروهایش تکیه داده و عرشه نرد کشی شده کشتی را نگاه می کرد، این کشتی مظهر همه زیبایی ها و جذابیت های دنیا بود به نظرم به کدی لبخند زد چرا که فهمیده بود اگر لبخند بزند مردم جذبش می شوند. کدی هم چند سوال از او پرسید از جمله اسم جدیدش و فهمید که او بچه تیز و با یک دنیا جاه طلبی است. چند روز بعد کدی او را به بندر دالوت برد و برایش یک کت سرمئی، شش شلوار سفید و یک کلاه قایقرانی خرید و وقتی که تو آلامی به سمت هند غربی و ساحل بربر حرکت کرد، گذبی هم با آن همراه شد. گتسبی به سمتی مبهم آن کشتی استخدام شد تا وقتی که با کدی بود نقشهای مباشر، رفیق، کاپیتان، منشی و حتی زندانبانی را تجربه کرد. چون دانکدی حشار میدانست که دانکدی مست چه دستگلهایی ممکن است به آب دهد و برای پیشگیری از چنین پیشامتهایی روز به روز بیشتر به گتسبی اعتماد می‌کرد. این وز پنج سالی طول کشید و کشتی سه بار دور غاره ی آمریکا چرخید. به نظر می رسید این وضع می تواند مدتها ادامه پیدا کند، اما شوی در بستان الکی سوار کشتی شد و یک هفته بعد هم دانکدی در غربت از دنیا رفت. هنوز عکس او را در اتاق خواب گتسپی به یاد دارم. مردی سرخ رو با موهای جوگندمی و صورتی زخمی و بیروح. عیاشی پیش که یک خصیصه زندگی آمریکایی یعنی خشونت وحشی روسپی خانه ها و کلاپ ها را برای سواحل شرقی به ارمغان آورده بود. همین خصیصه کدی به طور غیر غیرمستقیم روی گذبی هم اثر گذاشته باعث شده بود که او به ندرت لب به مشروب بزند. گاهی در مهمانی ها زنها شامپاین به خوردش می ولی او خودش را عادت داده بود که لب به مشروب نزند. ارسیهی هم از کدی بود. بیست و پنج هزار دلار. اما دستش به آن پول نرسید و گتسبی هیچ وقت نفهمید از چه ترفندهای قانونی علیه او استفاده شد اما هرچه از آن چند میلیون باقی مانده بود تمام و کمال به علاکه رسید و آنچه برای گتسبی ماند تربیت منحصر به فردی بود که به کارش آمد و طرح مبهم و نامشخص جی گتسپی به مردی واقعی بدل شد گادسی خیلی دیر این چیزها را به من گفت و من به این دلیل آنها را اینجا آوردم که همه چرندیات وحشتناکی که در مورد اجدادش گفته بود و ذره‌ای حقیقت نداشت تکذیب کنم. به علاوه گادسی این حرفها را بد موقع به من زد وقتی که گیج و سرگشته بود و من هم به نقطه‌ای رسیده بودم که هر چیزی را در مورد او هم باور کنم و هم باور نکنم. بنابراین از این وقفه کوتاه که به اصطلاح نفسش بند آمده استفاده کردم تا بساط آن تصورات غلط را جمع کنم. در رفت آمد من و گذبی وقفه افتاده بود چند هفته ای نه او را دیدم و نه صدایش را از پشت تلفن شنیدم. بیشتر نیویورک بودم و با جردن این طرف و آن طرف میگشتم و سعی داشتم خودم را پیش مه پیرش جا کنم. اما بالاخره بعد از ظهر یک روز یک شنبه به خانه گتسبی رفتم. هنوز دو دقیقه از ورودم نگذشته بود که یکی تام بیوکنن را برای اینکه که گلویی تر کند به خانه گتس بیاورد. جا خوردم. اما نکته جالبش این بود که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. سه نفر بودند سوار بر اسب. تام، مردی به نام اسلون و زنی زیبا در لباس سوارکاری قهوهی که پیش از این هم آنجا آمده بود. گتسبی از ایوان خانه گفت آه، از دیدنتون خوشحالم، خوشحالم که سر زدین انگار آنها اهمیت میدادن. بشینین، سیگاری، سیگار برگی، چیزی دود کنین گتسپی تون به سمت دیگر اتاق رفت و زنگ پیش خدمت را زد همین الان میگم براتون نوشیدنی بیارن حضور تام حسابی گتسبی را تحت تأثیر قرار داده بود و تو از آنها پذیرای نمیکرد آرام نمیگرفت. گرفت که فقط برای همین آمدند آقای اسلان چیزی نمی‌خواست. لیموناد؟ نه ممنون یک کم شامپاین؟ نه هیچی ممنون سواری خوب بود؟ این داروه راه خوبی داره فکر کنم ماشین ها آه، بله گذبی که کشش مقاومت ناپذیری به جانش افتاده بود رو کرد به تام که مثل قریبه در یک جلسه معارفه نشسته بود به نظرم شما رو پیش از این دیدم آقای بیوکنن؟ تا معدبانه و با صدایی گرفته گفت نه بله اما معلوم بود که یهادش نمیآید آره همدیگه رو دیدیم خوب یادمه حدود دو هفته پیش آ درسته با نیک بودین ها گتسبی جسارت به خرج داد و گفت من همسرتونو می شناسم راستی تام رو به من کرد نیک تو همین دوروبر بر زندگی میکنی خونه ای راستی آقای اسلون وارد صحبت نشد و با تکبر توی صندلیش لم داد زن هم چیزی نگفت تا اینکه به طور غیر ای بعد از دومین لیوان ویسکی صدایش گرم و صمیمی شد و پیشنهاد داد آقای همه اون مهمونی بعدیتونو میایم نظرتون چیه البته از اومدنتون خوشحال میشم آقای اسلون بدون هیچ تشکری گفت خیلی هم خوب به نظرم دیگه باید بریم گتسپی اصرار کرد. حالا چه عجله یه. دیگر به خودش مسلط شده بود و میخواست تام را بیشتر ببیند. خب چرا خب چرا برای شام نمیمونین؟ ممکنه مهمونهای دیگه از نیویورک سر برسن. زن با حرارت گفت. شما شام بین پیش ما هر دو. منظورش من و گتسبی بودیم. آقای اسلون بلند شد و گفت. بید دیگه. اما این را فقط به زن گفت. زن باز اصرار کرد جدی گفتم خوشحال میشم بیاید جام زیاد داریم گادزی نگاه پرسشگرانه به من کرد دوست داشت برود و حواسش نبود که آقای اسلون علاقه ای به این کار ندارد گفتم ببخشید من نمیتونم بیام زن تمرکزش را گذاشت روی گتسبی و گفت خب شما بیاییم. آقای اسلون چیزی در گوش زن زمزمه کرد و او بلند جواب داد و اگه همین الان بریم دیر نمیشه گذبی گفت من اسب ندارم تو ارتش اسب سواری میکردم اما هیچ وقت اسب نخریدم. باید با ماشین پشت سرتون بیام. یه لحظه اجازه بدین؟ همه گی به ایوان رفتیم و خانم و آقای اسلان به کناری رفته مشغول بگو مگوی پر حرارتی شدند. تام گفت با خود من فکر کنم یارو بیاد. یعنی نمیتونه بفهمه خانم نمیخواد بیاد. خب خود خانم گفت بیاد. این خانم یه مهمونی شما مفصل داره که گذبی یه نفرم اونجا نمیشنسه بعد اخمهایش توی هم رفت و ادامه داد موندم کدوم جهنمی دیزی رو دیده من شاید کم افکارم قدیمی باشه ولی این روزا زنها زیادی مورن میرن و هر نوع جونوری رو میبینن ناگاه آقای اسلون و خانم از پله ها رفتند پایین و سوار از پایشان شدند آقای اسلون به تام گفت بیا دیگه دیرمون شده باید بریم. و بعد رو کرد به من ممکنه به ایشون بگید نمیتونستیم صبر کنیم؟ با تام دست دادم و همگی به سردی سری برای همتکان دادیم و آنها به سرعت به سمت گذرگاه یورت میرفتند و پشت شاخ و برکای درختان ماه اوت ناپدید شدند همان وقت گتسفی کلاه بر سر و کت نازکی برده است از در جلوی ساختمان بیرون آمد تام آشکارا از اینکه دیزی تنها این طرف آن طرف به چرخه ناراحت بود و به همین دلیل شنبه شب همراه دیزی به مهمانی گادزبی بیامد. شاید حضور تام مهمانی آن شب را سنگین کرد. بین تمام مهمانی‌های بی در آن تابستان این یکی به شکلی دیگر در ذهنم نقش بسته. آدم ها مثل همیشه بودند یا دست کم آدم های از همان قماش. مثل همیشه شامپاین فراوان بود و شور و جنجالی رنگارنگ و پرهیجان حاکم بود. اما چیز ناخوشایندی در فضا حس می کردم. چیزی زننده که در مهمانی های قبلی وجود نداشت. شاید هم من به آن مهمانی ها عادت کرده بودم. عادت کرده بودم که به وست اک به عنوان یک دنیای کامل نگاه کنم با توجه به سبک و سیاق خاص خودش و با ابعاد بزرگش. جایی که دومی نداشت و خودش هم نمی دانست که اینطور است. و حالا من داشتم از دریچه چشم دیزی دوباره به وست اگ نگاه میکردم. اینکه با دیدی جدید و چیزهایی که همه توانت را صرف عادت کردن به آن کرده نگاه کنی. کاری غمانگیز است. هوا گرگومیش بود که تام و دیزی رسیدند و وقتی سلان سلانه بین زرق و برق آنجا میگشتیم صدای نجواگونه دیزی در هنجره شعبده میکرد. زیر گوشم گفت این چیزا حسابی هیجان زدم کرده نیک. اگه امشب حوض کردی منو ببوسی کافیه بهم به بگی خوشحال میشم برات ترتیب بدم فقط اسمم و صدا کن یا کارت سبز نشون بده من دارم همینطور کارت سبز پخش میکنم گذبی گفت یه نگاه به دروبرتون بندازیم آه دارم نگاه میکنم خیلی داره خوش مگذرم خیلی از کسایی رو که اسمشون شنیدین میتونین اینجا ببینین های مغرور تام بین جمعیت چرخید. ما خیلی منظور نمی‌بینیم. راستش داشتم به این فکر می‌کردم که اینجا حتی یه نفرم نمی‌شناسم. او شاید اون خانم بشناسید. گچوی زن بسیار زیبایی را که بیشتر شبیه گل ارکیده بود تا آدم نشان داد. زنی با جلال و جبروت که زیر درخت آلوی سفیدی نشسته بود. تام و دیزی به او خیره شدند. با همان ناباوری که از شناختن ستاره‌های سینما به آدم دست میدهد. چون پیش از این به نظر تنها شبهی بودند بر پرده سینما. دیزی گفت خیلی دوست داشتنیه. مردی که خم شده سمتش کارگردانشه. گتری با رعایت تشریفات تام و دیزی را از گروهی به گروه دیگر می برد. خانم بیوکنن و آقای بیوکنن و بعد از یک مکس کوتاه اضافه کرد چوگان باز. تام به اعتراض گفت آه نه نه من نه اما این صدا به وضوح برای گتسبی خوشایند بود چون تام تا آخر شب چوگان باز باقی ماند دیزی با هیجان گفت تا حالا این همه آدم معروف نیده بودم من از اون مرده خوشم میاد اسمش چی بود با اون دماغ کبودش گتسبی او را می شناخت و گفت که تهیه کننده ای خورده پاست هر چی ازش خوشم اومده خیلی خوشم نمیاد چوگان باز باشم دوست دارم ناشناخته به این آدمای معروف نگاه کنم دیزی و گتسپی رقصیدند یادم می که از فکستروت مبقر و سنجیده گتسپی غافلگیر شدم. پیش از این رقصیدنش را ندیده بودم. بعد دوتایی به سمت خانه من رفتند و نیم ساعتی روی پله ها نشستند و در این مدت من به خواهش دیزی توی باغ ماندم و کشیک کشیدم. دیزی محض توضیح گفته بود فقط اگه جایی آتیش گرفت یا سیل اومد یا بلایی از آسمون نازل شد خبرمون کن. برای شام پیش تام نشستم. به نظر می از آن حالت ناشناخته درآمده. گفت اشکالی نداره اونجا با بقیه شام بخورم. یه نفر داره حسابیم از پرونی میکنه. دیزی با مهربانی گفت برو اگه خواستی آدرسی چیزی یادداشت کنی اینم مداد کوچولوی کچولوی من. چند لحظه بعد دیزی نگاهی به اطراف انداخت و گفت اون دختره قیافش خیلی معمولیه اما خوب خوشگله. و من فهمیدم که از کل مهمانی فقط آن نیم ساعتی که با گتسپی تنها بوده به او خوش گذشته ما سر میزی نشسته بودیم که اغلب نیمه ماست و شنگول بودند تقصیر من بود که سر این میز نشستیم چون گتسپی را خواسته بودند پای تلفن و من هم دو هفته پیش از محسر همین آدم ها لذت برده بودم اما چیزی که آن موقع سرگرمم کرده بود بوی گندش در آمده بود آه چطارید دوشی ز دختری رو که خطاب قرار داده بودن داشت تلاش مذبوحانه ای می کرد که سرش را بگذارد روی شانه ام. با این پرسش صاف نشست و چشمهایش را باز کرد و گفت چی؟ زن گنده منگی که به دیزی اصرار می کرد فردا در ورزشگاه محلی با او گلف بازی کند به دفاع از دوشیزه بدکر گفت آه تازه الان که حالش خوبه همیشه وقتی پنج تا کوکتل می زنه شروع میکنه به جیغویخ کردن بهش گفتم باید مشروع و بذار کنار زن مرده اتهام دروغکی گفت میذارم کنار وقتی شنیدم داری جیغ میکشی به دکتر سیوت گفتم یکی به کمکمون احتیاج داره دوست دیگری بدون اینکه تشکر کند گفت آره الان خیلی هم از لطفتون ممنونه ولی وقتی سرشو کردی تو استخ همه لباساش خیس شد دوشیزه بده که جویده جویده گفت حالا به هم میخوره که سرمو بکنم تو استخ یه دفعه تو نیوجرسی نزدی بود خفشم. دکتر سیوت گفت: پس باید مشروب بذید کنار دوشیزه بدکر جیغ کشید نظرتو برای خودت نگه نگهدار دستات داره میله نمیذارم عملم کنیم وزن چیزی شبیه به این بود آخرین چیزی که یادم میآید این بود که با دیزی ایستاده بودیم و کارگردان سینما و ستارش رو نگاه میکردیم آنها هنوز زیر درخت آلو بودند و صورتهایشان آنقدر به هم نزدیک بود که فقط باری که از محتاب بینشان فاصله انداخته بود به نظرم جناب کارگردان تمام شب داشته به سمت ستاره سینما خم می شده تا توانسته به چنین فاصلهی برسد حتی دیدم که آخرین درجه یه را هم خم شد و گونه یه ستاره سینما را بوسید دیزی گفت ازش خوشم میاد. به نظرم دوستشتنیه اما بقیه هزار بدون هیچ دلیلی توی ذوق می زدند دیزی از وست اگ، این مکان بیریشه که برادوی تخمش را در یک دهکده سیادی در لانگ آیلند کاشته بود بدش میآد. از خامی آن بدش می آمد که تحمل ادب و احترام قدیم را نداشت و بدش میآد از سرنوشت زشت و زننده که ساکنینش را با یک میان بر از هیچ به هیچی دیگر هدایت میکرد. دیزی در همین آسانی که درکش نمیکرد چیز ترسناکی میدید. وقتی همراه آنها روی پله‌های ورودی منتظر آمدن ماشینشان بودیم هوا تاریک بود و فقط ده فوت مربع نور از چارچوب در به سیاهی ضعیف دم صبح می‌پاشید گاهی سایه‌ای پشت کرکرهی اتاق رختکن تکان میخورد و بالا می‌آمد و به سمت سایه‌ای دیگر می‌رفت ازدهام مبهمی از سایه ها بود که روبروی آینه نامرئی خودشان را آرایش می‌کردند یک مرتبه تام پرسید حالا این گتسپیه کی هست؟ یه قاچخشیه کلگانده؟ پرسیدم اینو از کی شنیدی؟ از جایی نشنیدم خودم میگم. میدونی که خیلی از این تازه به دوران رسیده ها تو کار قاچاقن. خیلی خوش گفتم گتسپی نیست لحظه سکوت کرد سنگویزه های گذر زیر پایش قرچ خروج میکردند باید حسابی جونگنده باشه که بتونه این همه جک جونو دور هم جمع کنه نصیمی خزهای خاکستری دور یقه دیزی را تکان داد دیزی جواب داد هرچی باشن از آدمایی که ما میشناسیم جالبترن تو که به نظر نمیرسید خیلی علاقمند باشی؟ چرا؟ بودم تام خندید و رو به من کرد <تصفيق> به قیافه دیزی دقت کردی وقتی که دختره ازش خواست ببردتش زیر دوش آب سرد؟ دیزی با زمزمه‌ای زنگدار و موزون شروع کرد به آواز خواندن و آن صدای ناب به هر کلمه معنی جدیدی میداد که تا به حال آن معنی را نداشتند و در آینده هم دیگر آن معنی را پیدا نخواهند کرد. وقتی آهنگ اوج میگرفت صدایش به زیبایی تغییر کرد و به دنبال آن به شیوهی شبیه صدای کنترالتوها ادامه میداد و با هر تغییری ذره دیگری از جادوی انسانی خود را در هوا منتشر می کرد ناگهان گفت: خیلی از آدم ها بی دعوت میان همون دختری که میگم بی دعوت اومده بود همینطور سرش رو میندازن پایینو میان تو و گسبیم اونقدر معدبه که اعتراض نمیکنه. تام با اصرار گفت: « خیلی دلم خواب بدونم این یارو کیو چیکار میکنه؟ باید تو توی این قضیه رو در بیارم دیزی گفت: « همین الان به میگم صاحب چند تا داروخون که خودش راشون انداخته لیموزین آهسته و کند پیدایش شد دیزی گفت شب بخیر نیک نگاهش از من گذشت و قسمت روشن بالای پله ها را کاوید جایی که صدای آهنگ والس تأثیر گذار و کمی غمناک ساعت سه صبح که آن سال شده بود از در باز بیرون میریخت به هر حال در این مهمانی بسیار بی تکلف امکانات رومانتیکی وجود داشت که جایی در زندگی دیزی نداشت آن بالا در آن آهنگ والز چه چیزی بود که انگار به دیزی می گفت برگرد؟ در این ساعتهای تیره و تار چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ شاید مهمان شگفتانگیزی رسیده بود؟ شخصی بی نهایت نادر و معرکه؟ یک دختر جوان و درخشان و محبوب، یک ستاره که با یک نگاه پر تراوت به گتسبی با یک لحظه رخ برخ شدن جادوی می آن پنج سال پای بندی را از یادش ببرد. آن شب من تا دیر وقت آنجا ماندم. گتسی از من خواسته بود که تا خلاص شدن از دست مهمان ها آنجا بمانم. در باغ ول میگشتم که بالاخره آخرین نفراتی که پای ثابت شنا بودند چاییده و سرخوش دوان دوان از ساحل تاریک برگشتند. بعد چراغ اتاقهای بالا خاموش شد و بالاخره گتسبی از پله ها پایین آمد پوست آفتاب سختش بد جوری روی صورتش کشیده شده و چشمهایش خیص و خسته بود بلا فاصله پرسید دیزی مهمونی رو دوست نداشت نه؟ <تصفح> البته که دوست داشت؟ با اصرار گفت نه نه دوست نداشت بهش خوش نگذشت ساکت شد دیدم افسردگی وحشتناکی در وجودش موج میزند گفت احساس میکنم خیلی ازش دورم نمیتونم حرف بهش بفهمونم منظور تو رقصه؟ رقص؟ با بشکنی که زد همه رقص رقصها را فرستاد به یک گفت رفیق قدیمی رقص چه اهمیتی داره؟ گذبی به چیزی کمتر از این رضایت نمیداد که دیزی برود پیش تام و بگوید من هیچ وقت دوست نداشتم بعد وقتی دیزی با این جمله، آن چهار سالی را که با تام گذرانده بود می میکرد، تازه میتوانستند در مورد خودشان به طور عملی و سنجیده تصمیم بگیرند. بعد از آزادی دیزی، یک کار این بود که به لویزویل برگردند و دیزی در خانه پدریش با گتسبی ازدواج کند. انگار که درست پنج سال پیش است. اما دیزی نمیفهمه، پیشترها میفهمید، نشستیم ساعت و حرف میزدیم. عرفش را قطع کرد و شروع کرد به قدم زدن لابلای پوست های میوه و روبان های ولو شده و گل های له شده دل در به دریا زدم و گفتم نمیشه از دیزی هم چی انتظاری داشت گذشته را نمیشه تکرار کرد ناباورانه فریاد زد نمیشه تکرار کرد چرا میشه تکرار کرد چنان وحشیانه به اطرافش نگاه کرد که انگار گذشته جایی بین سایه های خانهش کمین کرده و در چنگش است. گفت من فقط میخوام همه چی رو عین قبل بچینم سر جای خودش و با حالت خطو نشان کشیدن سری تکانداد و گفت حالا میبینه گتسپی خیلی در مورد گذشته حرف زد و من اینطور برداشت کردم که میخواهد چیزی را زنده کند شاید تصویری از خودش که در راه عشق دیزی از دست رفته بود زندگی گتسپی از آن پس مبهم و به هم ریخته شده بود اما اگر او می توانست یک بار به نقطه شروع برگردد و آرام آرام از همان جا شروع کند آن وقت می توانست بفهمد آن آشفتگی از چیست پنج سال پیش در یک شب پاییزی در خیابانی که برگ ریزان بود قدم می زدند تا به جایی رسیدند که دیگر درختی نبود و محتاب پیادهرو را نورانی کرده بود آنجا ایستادند به سمت هم برگشتند شبی سرد بود و پر از رمز و راز و حیجان که فقط در زمان تغییر فصل پیش می آید. نور ملایم خانه ها در تاریکی چشمک می و جنب و جوش و ولوله ای در ستاره ها برپا بود. گتسبی از گوشه چشمش دید که راسته پیادروها نردبانی شده و به سمت مکان مرموزی در نوک درخت‌ها رسیدهاند رسیدند. گتسپی می توانست از آن نردبان بالا برود. البته اگر تنها بالا میرفت آن وقت می توانست اسارهٔ حیات را بنوشد وقتی چهره سفید دیزی جلوی صورتش قرار گرفت ضربان قلبش شدید و شدیدتر شد میدانست زمانی که این دختر را ببوسد و رؤیاهای ناگفتنیاش را با نفس گذرای او بیامیزد دیگر فکرش به این سوبان سو کشیده نخواهد شد درست مثل فکر خدا پس صبر کرده بود تا لحظه ای به آوایی که از ستاره دوردست دست گوش دهد بعد دیزی را بوسیده بود و حلول روح در جسم محقق شده بود در تمام مدتی که حرف میزد، حتی ما بین ابراز احساسات بی یاد چیزی افتادم تکی از واجه گمشده گم شده که مدت پیش جایی شنیده بودم یک لحظه جمعه آمد نک زبانم و لبهایم مثل آدم های لال از هم باز شد انگار روی لبهایم چیزی بیشتر از باری که ای از هوای مرتعش در تب و تاب بود اما صدایی از لبهایم بیرون نیامد و چیزی که داشت به خاطرم میامد برای همیشه ناگفته ماند